داستان‌های افسانه‌ای صوتی به مدیریت آقای محمد جواد بوستانی خانش توسط بنفشه این داستان بهترین پاداش در یه شب تاریک و بارونی پادشاه با اسب خودش از یه گوچه باریکی عبور می کرد او بعضی از شبها تغییر قیافه میداد و مثل مردم عادی لباس می پوشید و به شهر و روستا می رفت تا ببینه مردم چطور زندگی می کنن اون شب هم با لباس مبدل بیرون اومده بود و بارون کاملا خیسش کرده بود اما شاه به این موضوع اهمیتی نمیداد چون اونقدر قوی بود که در برابر سرما مقاومت کنه. او اعتراضی به تاریکی هوا هم نداشت و از روبرو شدن با خطر نمی ترسید. با این همه آروم پیش می رفت و احتیاط لازم رو انجام می داد. چند راهزن پشت سرش سبار بر اسب می اومدن. اونا که متوجه شده بودند شاه سواره ی اسب گران قیمت و با ارزشه قصد داشتن اسبش رو بدزدن ناگهان شاه رو محاصره کردند و شاه هم که غافل گیر شده بود بدون اینکه وحشتی به خودش راه بده سعی کرد راه فراری پیدا کنه اما از بخت بعد سمای اسبش توی شکاف جاده گیر کردن و دزدا که بیشتر از ده نفر بودند بهش حمله ور شدند و میخواستن غارتش کنند اما ناگهان شش مرد جوان به صحنه درگیری رسیدن و به دزدا حمله کردند. دزدا که درگیر حمله غیرمنتظره شده بودند بدون اینکه بتونن به شاه صدمه بزنند منتظر فرصت مناسب بودند. هرچند شاه به صورت ناشناس سفر میکرد اما همیشه با فاصله مشخص عد از محافظاش دنبالش میکردند. چند لحظه بعد که محافظان پادشاه رسیدن، خودشون رو توی خطر دیدن و تلاش کردن فرار کنن که موفق نشدند. محافظان پادشاه به آسونی دوزا رو دستگیر کردند. شاه از اینکه اون جوونا بدون اینکه پاداشی بخوان یا اونو بشناسن بهش کمک کرده بودند خیلی خوشحال شد. ازشون تشکر کرد و خواست که اونو تا کاخ سلطنتی همراهی کنند. اون جوونا از اهالی روستاهای دوری بودند که به علت اقامت شبانه توی یک مسافرخونه با همدیگه دوست شده بودند صبح روز بعد خبر این حادثه همه جا به طور گسترده ای پیچید همه از اینکه راهزنا موفق نشده بودند به پادشاه محبوبشون صدمه برسونن خوشحال بودند وزرا افراد خانوادگی سلطنتی درباریا و سیاست مدارا همه و همه شجاعت اون مردان جوان رو تحسین میکردن بعد از ورود شاه به دربار شش مرد جوان به حضور شاه رسیدند. شاه از تخت شاهی پایین اومد و اونا رو بغل کرد و گفت دوستاره به خاطر کمک اونا پاداشی بهشون بده بعد گفت که به هر کدومتون اجازه میدم تا درخواستی از من بکنید اگه این درخواست در حد توانم باشه با کمال میل اونو انجام میدم. بزرگترین جوان یه لحظه فکر کرد و گفت پادشاه بزرگ سال هاست که دلم میخواد خونه راحت و مناسبی داشته باشم. میشه این آرزو رو برآورده کنید؟ شاه دستور داد تا معمار دربار یه خونه بزرگ و زیبا برای اون مرد جوان بسازه. جوان بعدی خواست تا در صف نجیب های دربار قرار بگیره پادشاه هم عنوانی بهش بخشید و اون رو یکی از درباریان کرد جوان سوم گفت مردم روستای من هر هفته برای فروش سبزیجات میان به شهر اما جاده خوبی بین روستای ما و شهر وجود نداره برای همین روستایا تو فصل برف و بارون به سختی این راه رو طی میکنن من میخوام دستور بفرمایین تا یه جاده مناسب برای روستاییا بسازند. بسازن پادشاه این کار رو هم انجام داد و قرار شد مسئول جاده ها و پل به این مسئله رسیدگی کنه جوان چهارم که هنگام اعلام درخواست خودش از خجالت سرخ شده بود گفت اله حضرت شما مثل پدر من هستین من میخوام همسر مناسبی برام انتخاب کنین دلقک پادشاه یه دختر خیلی زیبا داشت شاه دستور داد که دخترش رو به اون جوان بده دلغک کم با خوشحالی پیشنهادش رو پذیرفت جوان پنجم درخواست پول کرد و به سرعت چند کیسه که طلا بهش دادن نوبت به آخرین جوان رسید او گفت پادشاه ها، خواهش من اینه که سالی یه بار مهمون من بشید تا وقتی که یکی از ما دو نفر بمیریم همه از خواسته اون جوان تعجب کردند و با خودشون گفتن چه جوان احمقی. حتی برای خود پادشاه هم این خواسته یکم عجیب بود. اما چون قول داده بود، بناچار در خواست جوان را قبول کرد که یه روز در سال در خونه اون مرد جوان مهمون باشه. حالا نوبت ادارات مختلف دربار بود که برنامه یه سفر رو تدارک ببینن، اول باید یه جاده مناسب تا روستای مرد جوون میساختند تا عربه شاهی بتونه براحتی از اون عبور کنه. سوال بعدی این بود که چطوری شاه میتونه یه شبان روز توی یه کلبه حقیر و کوچیک سر کنه؟ پس قرار شد یه کاخ باشکوه توی اون روستا برای اقامت شاه بسازن. اما آیا جوون میتونه با درآمد خودش اون کاخ رو اداره کنه؟ و امکانات لازم رو برای اقامت یه روزه شاه فراهم کنه؟ برای حل این مشکل هم چند کیسه طلا به مرد جوان دادن و بودجه سالانه هم براش معین کردند که هر سال میزبان شاه باشه طبق قانون اساسی شاه فقط میتونست مهمون نوجبا و اعیان باشه بنابراین مرد جوان رو در صفحه اعیان دربار قرار دادن و بهش در رده شاه سادگان درباری انوانی عطا کردن که از همون احترام برخوردار بشه اما هنوز موضوع مهمی وجود داشت خانمی که قرار بود میزبان شاه باشه چی؟ باید از نزدیکانش باشه که عادت و سلیقه های شاه رو بدونه چه کسی بهتر از دختر پادشاه؟ بنابراین خیلی زود ترتیب عروسی دختر پادشاه و اون مرد جوان داده شد به این ترتیب جوون باهوش تونست تنها با یه درخواست به همه اونچه که دوستانش رسیده بودند برسه و همه اون امکانات و ویژگی ها رو به دست بیاره امیدوارم از شنیدن این داستان لذت برده باشید <تصفيق> <تصفيق> کانال تلگرامی هزار افسان داستان داستانهای افسانه ای صوتی نشانی کانال تلگرامی t.me مهران دوستی t.me نقط نشانی وبلاگ ما m e h r n d o u s